بسم الله الرحمن الرحیم الاستغاثه یا لرجلی مال شما کسر داده یا فتحه لامو کتاب شما خب این کتاب کسر داده اشتباهه چون لام لام در استغاثه لام مص ما چند اصطلاح داریم یکی مستقیست مستقیستون متکلمه مثلا اولیه که داره شخصی رو طلب کمک میکنه یا برای خودش یا برای کسی دیگه اونی که صدا میزنه بهش میگن مستقیت، اونی رو که ازش کمک طلب میکنه بهش میگن مستقاف به اونی که به خاطرش کمک طلب میکنه بهش میگن مستقاف من اجله یا مستقاف له. خب لام من به بهی میشه فتحه داره مگر در یک حالت که اون حالتش رو توضیح میدم امثله گروه الف شماره 4 یا لل کرامی و محسنین این لل این لام کسره داره چرا چون زمانی که معطوف الیه باشه و یا تکرار نشه معطوف بشه و یا تکرار نشه. در این حالت لام مختص بهی کسره میگیره وگرنه لام مستقص بهی فتحه داره تا ما لام مستقص بهی ومستغس لهور تشخيصه دي مثلا در همين مثال عبلي يا لرجل المروعتي للبائسين للبائسين ان لام مستغس له. لرجل و لرجل لح يا لرجل المروعتي للبائسين لام مستغف به فاتح داره لامه مستغس له جي داره کسره داره بخاطر تشخيص البته كلمان ان مستغس به سر جای زمیره و لام مجرون زمانی که بر زمیرها وارد میشه فتح داره آ؟ لی و لکم روی زمیرها که بیاد چی داره؟ فتح داره میگن این چون جای زمیر اومده بله فتح داره خب پس لام مستقص خودش در قواعد میگه تکرار نکنی. يا لرجل المروءه للبائسين يا للحكام من الغلاء يا لمحمد ويا لعلي لليتامى يا للكرام وللمحسنين تشار حالت دار خاطر چهار مثال آورده در قواطع توضیحیده اینا بال استقاصه بودن اي متعجب منه متعجب من این هم مثله گروه دوم متعجب من هستند. این استغازه نیست موقع میگه یا للحر از آتش تعجب کرده داره میگه یا للحر این دیگه استغازه نیست یا لخص به مصر اینجا هم از آبادی مصر سخن میگه نویسنده مصری به خاطر این یا للعظهاری و یا لل اسمار یا لزهامی و لیل جلبتی خب بیایید قواعد شروع کنیم احکاماتی که در مورد استغاثه یا متعجم وجود داره الاستغاث قاعده 239 کتار الاستغاثه تو نداؤن نه نداؤو که مضافه تعدوین نمیگیره. میگه استغاثه نداؤه من کسی هست که یعینو على دفع شده کمک میکنه كم بر دفع چی؟ تو ندا میزنی کسی رو که میتونه شدت تو رو چکار کنه؟ دفع کنه و این جایزه لازه اعتقادی برای که زمان که شخص توانه این کار رو داشته, داشته باشه خب الاستغاست تو ندا من يعين على دفع شده و اداتوها یا ادات یا استغاست چه هست؟ یا؟ دون بقیه احروف الندار بغیر از حروف دیگه ندا یعنی بقیه حروف ندا نمیتونند برای استغاثه بکار برایست فقط یا فقط چی؟ یا و یجر المستغاث بهی بلام مفتوحه اعراب شده دارد توزین ده میگه مستغاث بهی مجرور هست به وسیله لام مفتوح وسیله لام چی؟ فچه دار یعنی لام مستقاف به فچه داره در مثال اولی یا لرجولی این رجل مستقاف بهی بش میگن لیل هم مستقاف لح یا مستقاف من عجلهی هم بش میگن بله مستقاف لعجلهی پس مستقاف لح هم بش میگن مستقاف لعجله هم بش میگن پس و یجرل مستغف به بلا من مفتوحه مجرور میشه مستقاف به بالامه فتحه دار الا مگر در یک حالت لام مستقاف به کسره است کسره داره الا اذا کان معطوفا مگر زمانی که مستغف به معطوف اقیم شد مانند امثله گروه علی شماره چار یا کرامی و للمحسنین للمحسنین اینجا معطوفه اینجا چاست و یا هم تکرار نشده اگر اینجا اینجوری می بود یا لالکرامی و یا للمحسنین می شد اگر یا رو دوباره تکرار کردیم. ما ولی چون یا تکرار نشده و معطوفه، پس لام مستقاف به اینجا چی می دی؟ کسر می ده. اینو داره میگه گی این نقطه رو الا اذا کان معتوفا مگر زمانی که مستقاف به معطوف باشه و هو غیر مسبوق بیاین و غیر مسبوق بیا باشه یعنی یا دوباره تکرار نشده باشه. فتكسر دارين حالات فكسرة ميجرة لام وي وي ويجر المستغاث لعجله، ومجرور مشى المستغاث لعجله بلا من مكسورة باللام مكسورة مانند يا لرجلن يا لرجل يا لرجل المروة للبائس إنجاء إنجاء لي چی لا رجلل ال... بایل این کتاب من اشتوای داده بود براساس کتاب اشتوای کرنا این لا به فتحه داره یا لرجلل مروعه تی پس اماننده مثال اول یجرل مستغاث لعجلهی بلام المکسوره مستغاث لعجلهی رو میگه للباعثین چون رجل مستغاث به بود باعثین هم چیه مستغاث لعجله هست میگه لامه میگه خوده مستقات لعجله با لامه مکسوره مجرور میشه با لامه چه؟ مانند مثال اولی یا لرجل المروتی للباعثی میبینید که با لامه کسرداری مجرور, مجرور هست پس یا حرف نداه هست لرجلی جار و مجرور متعلق بیاه هستونین یا نائب مقام چی هست؟ فعل هست للبایتین هم متعلق به یا هست مجرور هست جارو مجرور هست پس میگه مستقافل عجله مجرور میشه با چه بالام و... کسردار مستقافل عجله بالام کسردار مجرور میشه او ببین یا به وصیل من مجرور میشه مانند یا للحکامی من الغلا اینجا با چه مجرور شده با من. خب این بود حالاتش و المتعجب و منح کل مستغاست به متعجب منح مثل به هست بخاطرین اگر امثله گروه دومو سری بزنید یا يا للحر یا يا لخصبی مصر و یا للازهاری و یا للاثماری و یا للزحامی و اینی هی رو داره؟ مستقاس به رو داره یعنی لامش فتحه داره مگر زمانی که معطوف و عقش و متعجب منه مثل مستقاس به و یا تکرار نشده باشي وقبل شياي نشده باشي بعد الزواقعات في آي دوباره تكرار نشده باشي <تصفيق> بالمعنى ده بصال آخر فس والمتعجب منه كالمستغاث به في جميع احواله متعجب منه كمثلة گروه دونغو متعجب منه كمثلة گروه با مثل مستغاث به در تمام حالاتش حالا ابي ايت قاعده 240 يجوز في المستغف به والمتعجب منه جائز است در مستغف به و متعجب منه ان يبق على حالهما كما لو كانا باقی بمانند بر حالت چون همون حالتی که منادا بودند همون حالتی کی بودند منادا بودند یعنی چی بگیم یعنی بگوییم آقا یا محمد اه در مستغاف به و در متعجب من هم بگیم یا حر این موقعی از آتش تعجب کردی یا میگی یا حرو یا این اللام همین این همین چیزی میگه میگه يجوز في المستغافه به جایز در مستغاف به و المتعجب منه و متعجب من ه. ایب یا الا حاله له که باقی بر چیشون بمونند بر چی؟ حالتشون چه کدوم حالتشون کما لو کان منادین همات طور ب... که چی باشند همون طور که منادا باشند بله پس جایزه که همون حالت منادا شی بشن باقی بمونند یا خاص بال ومية تنين هم تنين وأن يختم بالف زائدة ومية تنين كأباء ألف زائدة ينارب بيان بأعين وأن يختم بالف زائدة وإن ك جائزك بألف زائدة بيان بفزين مثلا بقول يا مُحَمَّدَهِ در إِسْتِغَاثِهِ و در متعزم میگم بیم یا حرار متنشید سرورانه نمیتونی. اما اگر لام دادیم مستقاست بهی رو دیگه الیف نمیتونیم بیاریم اما اگر مستقاست بهی رو لام دادیم دیگه الیف نمیتونی. نمیتونیم بیاریم سرکیبش یا میگیم حرف ندا استقاسه لا رجل المروتى، لا رجل جار مجرور، متعلق بيا المروتى مضافا إليه شاس، للبائسين جار مجرور متعلق بتي بيا. متواجدين شديد سرورا أنت من؟ لا، مستور لا ميسيروس ما مشي. لا ميسيروس. سأل بله لام لام استغرصه است ولی نه اللحظه ایرابی لان حرف جاره حرف چیه؟ جنب. حرف جره مجرور میکنه متوجه شدی الان؟ جان؟ لام بله ولی حرف جره نه لرجولی مستغرص بیشه یه اونی که کمک ازش طلب میکنی اون چیه؟ اون مستغاف بیه اونی که برایش طلب کمک میکنی اون چیه؟ مستغاف لعجلیه مثلا موقع که میگی قید... یا لالله للمسلمینه مستغاف به الله مسلمین چیه؟ مستغاف لعجلیه هست اللحا از ارابی هر طور مجروف مجروبه بگه مستقیص توی اکداری صدا میزنی متکلم رو میگن، حسو خانگوی رو بگن چی؟ یا بله یا قائم مقام فعله بله بله اللحاظ اعرابی خود داستان واضح هست و اللحاظ حرکت دولام لام اولی مستقیص به فتحه داره مگر در یک حالت اما لام مستقاف لح یا مستقاف لعجله کسره داره. داره جان نقششی چی میگی؟ می رو مجروره؟ مستقاف لعجله اینجا برای باعث یعنی درمانده داره میگه ای مرد ای مرد مروت و مردانگی به داده کی برست؟ بدان انسانای درمانده برست باعثین در قرآن اومده این کلمه الباعث فقیر ال...